دیر زن زندگی میکرد که سه تا خدمتکار داشت. هر سه تا خدمتکارش خیلی زیبا بودن ولی خدمتکار کوچیکترش از همه زیباتر بود. کل به بی اونا بین درخت پنهان شده بود که هیچکس کس زیبای اونا رو نمیدید. مگه آفتاب و محتاب و ستاره ها. پیرزن خیلی از اونا کار میکشید. هر روز از صبح تا شب رشتههایی طلایی بهشون میداد تا بریسند و هر وقت یه دوک پر میشد دوک دیگه بهشون میداد. خلاصه اینکه دخترها از صبح تا شب مشغول کار بودن. گاهی وقتا پیرزن به مسافرت میرفت و وقتی که میرفتش مسافرت دخترها رو تو اتاقی میذاشت و الیاف کافی هم بهشون میداد. و درو قفل میکرد و میرفت. اون هر تا دوسه دو سه بار به سفر میرفت. دخترها هرگز نمیفهمیدن که علیاف های طلاق از کجا میاد و یا نخایی که اونا می‌ریسن به کجا میره. یه بار وقتی پیرزن می‌خواست به مسافرت بره برای شیش روز به هر کدوم از دخترها علیاف داد و همون هوش داره همیشگیر بهشون داد. که بچه ها مراقب چشماتون باشید و با هیچ مردی هم صحبت نکنید وگرنه روشنی نخها کم میشه و دردسر زیادی برامون به وجود میاد اونا به حرف پیرزن خندیدند و به همدیگه میگفتن چطور میشه کاری کرد که هم با مردا صحبت کنید و هم درخشش نخها کم نشه سومی روزی که پیرزن به سفر رفته بود شاهزادهای که برای شکار به جنگل اومده بود از همراهاش جدا شده بود و گم شد شاهزاده زیر درختی ایستاد تا اسبش کمی آب بخوره و استراحت کنه خودشم زیر درخت خوابش برد وقتی از خواب بیدار شد و دوباره را افتاد دیگه خورشید غروب کرده بود بلاخره بعد از جستجوی زیاد تونست راه باریکی رو بین درختا پیدا کنه این راه باری اونو به کلبه کوچکی می رسون. پیرزن که جلوی در کلبه نشسته بودند تا کمی خونک بشن شاهزاده رو دیدن که به کلبه اونا نزدیک میشه. دو تا خدمتکار بزرگتر که حرف پیرزن رو یادشون بود فورا از جا برخواستن. ولی دختر کوچکتر گفت من تا به حال کسی مثل اونو ندیدم بذارید یکم بهش نگاه کنم. اونا اونو مجبور کردند که داخل کلبه بره ولی وقتی دیدن که راضی نمیشه اونو همونجا گذاشتن و خودشون داخل رفتن شاهزاده نزدیک اومد و به اون سلام کرد و گفت که تو جنگل گم شده و راه زیادی رو طی کرده و حالا هم خیلی خسته و گرسنه است دختر رفت و برای اون غذا آورد و از گفتگون با اون خیلی خوشحال بود به حرف پیرزن رو به کلی فراموش کرده بود. همراههای شاهزاده که در جنگل خیلی دنبالش گشته بودن و اونو پیدا نکرده بودند، دوتا تا قاسد رو نزد شاه فرستادند تا بهش خبر بدن که پسرش گم شده. شاه فورا گروه بزرگی رو به جنگل دنبال اون فرستاد. گروه جستجو بعد از سه روز کلبر رو پیدا کرد. شاهزاده هنوز جلوی در کل به نشسته بود و گفتگوی اونا چنان دلنشین بود که انگار فقط یه ساعت گذشته شاهزاده پیش از این که دختر رو ترک کنه بهش قول داد که دوباره برگرده و اونو با خودش به عنوان همسرش به دربار ببره وقتی شاهزاده رفت دختر رفت پشت چرخ ریسندگیش نشست تا کارهای عقب موندش رو جبران کنه ولی متاسفانه متوجه شد که درخشندگی نخوااش از بین رفته. اون از اینکه هشدار پیرزن رو تازه یادش اومده بود قلبش به تپش افتاد و تازه هنوز نمیدونست که چه بدبختیایی قراره به سرش بیاد. امشب پیرزن به خونه برگشت و از دیدن نخوا فهمید که تو نبودنش چه اتفاقی افتاده. خیلی عصبانی شد و به خدمتکارش گفت که برای خودش و شاهزاده دردسر سر بزرگی درست کرده. دختر از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شد و تصمیم گرفت که به شاهزاده کمک کنه. وقتی که اون بچه بود یاد گرفته بود که با پرنده ها حرف بزنه. حالا میتونست از این تواناییش کمک بگیره. اون رفت بیرون و دید که کلاقی روی شاخه درختی نشسته و پرابال میزنه. به کلاغ گفت ای پرنده واهوش، چه بالای زیبایی داری؟ آیا به من کمک میکنی؟ کلاغ گفت بله من چجوری میتونم بهت کمک کنم؟ دختر گفت پرواز کن تا به شهر برسی. بعد به قصر پادشاه برو؟ پسرش رو پیدا کن و بهش بگو که مشکل بزرگی برای من پیش اومده و بعد ماجرای تیره شدن نخها و عصبانی شدن پیر زن و درست شدن دردسر رو برای کلاق تعریف کرد. کلاق بهش قول داد که این کار رو براش انجام بده و پرواز کرد و رفت. دختر به خونه برگشت و مشغول نگاه کردن به خواهرای بزرگترش شد چون پیر زن گفته بود که اون دیگه نباید نخ بریسه. حدودهای عصر بود که اون قارگار کلاغ رو شنید. بلند شد که بره ببینی جواب چیه. خوشبختانه کلاغ تونسته بود که تو قصر کسی رو پیدا کنه که زبون پرنده ها رو بفهمه. و مسئله رو برای اون گفته بود. شاهزاده با شنیدن پیغام خیلی ناراحت شده بود و دوستاش رو خبر کرده بود تا با اونا مشورت کنه و ببینن که چه کار میتونن انجام بدن. خلاصه به وسیله شخصی که زبون پرنده ها رو میفهمید به کلا گفته بود که بیاد و به دختر بگه که نه شب دیگه شاهزاده به دنبالش میاد و اونا با خودش میبره و کلاقم به سرعت اومده بود تا این پیغام رو برسونه دختر از کلاق تشکر کرد و به خونه رفت ولی درباره این موضوع با کسی حرفی نزد هرچی به شب نهم نه نزدیکتر میشدند دختر بیشتر نگران میشد میترسید که اتفاق بدی پیش بیاد و همه چیز رو به هم بریزه تو شب مقرر اون بیرون کل بخوابید تا با اومدن شاهزاده سری از خواب بیدار بشه خیلی زود صدای پای اسبها رو شنید و گرد و قوار گروهی رو دید که همراه شاهزاده بودن شاهزاده به محض دیدن دختر از اسب پایین پرید و اونو سوار بر اسبش کرد و راه افتادن اون شب یه شب محتابی بود و اونها به راحتی راهشون رو پیدا کردن به زودی آفتاب طولو کرد و اونا مشغول صحبت کردن با همدیگه شدن اونقدر که متوجه گذشت زمان نشدن روز بعد همه متوجه فرار کردن اون دختر جوون شدند. پیرزن پرسید که چه اتفاقی افتاده و خواهرا گفتن که چیزی نمیدونن. اما پیرزن خودش حد زد که ماجرا از چه قراره و تصمیم گرفت درس عبرتی به فراری ها بده. او ماده سهرامیزی تهیه کرد و یه مقدار از نمک جادویی خودش رو هم روی اون ریخت و بعد مخلوط رو توی پارچهی به شکل توب در آورد و اون رو به دست باد سپرد و گفت ای گرد باد ای مادر باد ها این رو به اون کسی برسون که گناه کرده این توپ رو با خودت ببر اون رو به و در رودخونه بنداز حدودای نیمه روز بود که شاهزاده و همراهاش به رودخونه رسیدن که یه پل باریکی روی اون بود که باید از اون پل میگذشتن. شاهزاده و دختر درست وسط های پل بودند که اون توپ جادویی از راه رسید یهو اسب ایستاد و قبل از اینکه کسی بتونه کاری بکنه دختر به داخل رودخونه افتاد شاهزاده خواست خودش رو به دنبال دختر به آب اندازه که همراه اونو گرفتن و به زور رو اسب نشوندن و به قصر بردن اون شش هفته خودش رو در اتاقی زندونی کرد و چیزی نخورد و حرفی هم نزد تا اینکه اونقدر بیمار و ضعیف شد که همه از زندگی اون نامید شده بودند. شاه تمام حکیم های سرزمینش رو خبر کرده بود ولی هیچ کدوم نتونستن پسر رو معالجه کنند. بالاخره جادوگر قصر به شاه گفت که بهتره جادوگر سرزمین همسایه رو خبر کنید اون از همه این حکیم ها بیشتر می‌دونه. شاه قاسدی رو به اون سرزمین فرستاد و یه هفته بعد جادوگر پیری به اونجا رسید. جادوگر گفت شاه عزیز باد این بیماری رو به پسر شما رسونده و یه توب به دختر مورل علاقه اون آزار رسونده. مشکل اصلی اون اینه. بنابراین شاه پسرش رو بیرون برد و در معرض باد قرار داد. پسر حالش یک کم بهتر شد و همه قضیه رو برای پدرش تعریف کرد. شاه گفت اون دختر رو فراموش کن و کس دیگه رو انتخاب کن. اما شاه ساده گفت که هرگز نمیتونه به کسی دیگه علاقمند بشه. یه سال بعد که شاه ساده دوباره به همون پل رفته بود که دختر در اونجا به کام مرگ رفته بود با دیدن پول دوباره به یاد ماجرا افتاد و همه چیز براش دوباره زنده شد. همینطور که اون غرق در ناراحتی بود صدای آوازی رو شنید. دروبرش رو نگاه کرد ولی کسی این رو ندید اونجا. بعد دوباره اون صدا رو شنید. آه، افسون شده و فراموش شده. باید همینجا بمانم. آشق من مرا رها کرده است و عروسش را که آن همه عزیز بوده آزاد کرده است شاهزاده که واقعا تعجب کرده بود از اسبش پایین اومد و اطراف و زیر پل رو نگاه کرد تا ببینه چه کسی اونجا پنهون شده ولی هیشکی نبود شاهزاده متوجه شد که گل زنبغ زردرنگی روی آب شنابره که نیمی از اون به وسیله برکاش پوشونده شده اما گلها که آواز نمی اون با ترجبه بسیار یه بار دیگه آواز را شنید. آه، افزون شده و فراموش شده، باید همینجا بمانم. آشق من مرا رها کرده است، عروسش را که آن همه عزیز بود، آزاد کرده است. ساده فورم به یاد ریسنده های افتاد و با خودش گفت اگه اونجا برم شاید اونا بتونن کمکی بهم کنن و فوری سوار اسبش شد و به طرف کل برم. شاهزاده دو تا خدمتکارو کنار چشم دید و به اونا گفت که یه سال پیش چه اتفاقی افتاد و حالا اون دوبار صدای عجیبی رو لب رودخونه شنیده ولی کسی اونجا نبوده. خواهرا به شاهزاده گفتن که اون زنبق زرد رنگ خواهر اونا بوده که نمرده ولی به دلیل تلسم تو به یه زنبق تبدیل شده. اون شب قبل از اینکه شاهزاده بخوابه، خواهر بزرگتر از گیاهای جادویی شیرینی درست کرد و به اون داد تا بخوره. نیمه شب شاهزاده خواب دید که تو جنگلیه و آواز همه پرنده ها رو میفهمه. فردا صبح اونی موضوع رو به خواهرهاش گفت و اونا گفتن که این خواب به دلیل اون شیرینی بوده. و از این به بعد خوب به آواز پرنده ها گوش بده و از اونا بخواد که عروس اون رو به شکل اولش برگردونه. اون حرف خوهره رو قبول کرد و با شادمانی به راه افتاد. همونجوری که از بین جنگل میزشت معنی آواز پرنده ها رو خوب میفهمید. اون شنید که پرنده‌ای به پرنده دیگه میگه چه آدم هایی کتافکری چیزا رو هم نمیفهمند حالا تقریبا یه سالی که این خدمتکار تبدیل به زنبخ شده و با اینکه اون همه آواز غمگین میخونه و همه صداش رو میشنوند کسی بهش کمک نمیکنه. کنه. شخصادم که چند روز پیش از کنار اون گذشت و صداش رو شنید آقلتر از بقیه نبوده. پرنده اضافه کرد که البته خودش خیلی بدچانس بود. با این حال شاهزاده میتونست از جادوگر یک کشور دیگه کمک بگیره. شاهزاده با شنیدن این حرفا به فکر فرو رفت که قاصدی به کشور همسایه بفرسته. اما شنید که یه پرستو به پرستوی دیگه میگه خوبه که ما به اون کشور بریم اونجا بهتر میتونیم آشیانه بسازیم. شاهزاده فریاد زد دوستای مهربون صبر کنید. میشه یه کاری هم برای من انجام بدین؟ پرندهها ایستادن. شاهزاده گفت سلام مرا به جادوگر اونجا برسونین و ازش بپرسیم من چطوری میتونم دختری رو که به شکل یه زنبق آبی در اومده به شکل اولش برگردونم پرستوها پرواز کردن و رفتن و شاهزاده کنار پل رفت ایستاد و امیدوار بود که دوباره اون صدا رو بشنوه ولی صدایی به صدای آب و هوهوی باد نشنید. نامید شد و به خونه برگشت مدتی بعد روزی در باغ نشسته بود و داشت با خودش فکر میکرد که پرستوها حتما پیغامون رو فراموش کردن که یه ها دید آقابی سرش پرواز میکنه. پرنده کم کم پایین اومد و روی درختی نزدیک شاهزاده نشست و گفت جادوگر کشور همسایه سلام رسوند و گفت بهت بگم که برای آزاد کردن اون دختر باید این کارا رو انجام بدی لب به رودخونه برو و خودت رو گلی کن بعد بگو از یک انسان به خرچنگ بعد تو تبدیل به یه خرچنگ میشی و به سرعت در آب بپر اونقدر شنا کن تا به ریشه های زنبق آبی برسی ریشه ها رو از گلولای تمیز کن و بعد خودت رو محکم به اونها ببند و تا سطح آب بالا بیا زار آب کاملا از روی گل زنبق عبور کنه بعد از طرف چپ رودخونه اونقدر جلو برو تا به یه درخت زبون گنجش برسی کنار اون درخت یه سنگ بزرگه کنار اون سنگ بیست و بگو از یه خرچنگ به یک انسان از یک زنبق به یک دختر اون وقت هر دوی شما به شکل اولیه خودتون برمیگردید شاهزاده برای نجات دختر دوچار ترس و تردید شده بود تا اینکه یک کلاق بهش گفت برای چی شک داری جادوگر اشتباه نمیکنه. پرنده ها هم هیچ وقت کسی رو گول نمیزنند. برو و اون دختر رو نجات بده شاهزاده فکر کرد که هیچ چیز برای من بدتر از مرگ نیست مرگم بهتر از این ناراحتیه بنابراین سوار اسبش شد و به طرف پل راه افتاد. اون دوباره ناله زاری زنبغ رو شنید و دیگه تردید نکرد. خودش رو کاملا آغشته به گلولای کرد و گفت ای یک انسان به یک خرچنگ و به دنبال اون تبدیل به خرچنگ شد و داخل آب پرید. در یه لحظه داخل گوشاش آب رفت و بعد همه جا سکوت برقرار شد. اون شروع کرد به تمیز کردن ریشه ها البته این کار خیلی وقت گرفت دوباره به سطح آب اومد و گذاشت جریان آب از روی گل عبور کنه بعد را افتاد تا به درخت زبان گنجش رسید اون هرچ جلو میرفت درخت را ندید اما بالاخره بعد از مدت زیادی اون درخت پدیدار شد اون کنار اون ایستاد و گفت از یک خرچنگ به یک انسان از یک زنبغ آبی به دختر. تو یه لحظه دید که خودش همون شاهزاده شد و دخترم کنارش ایستاده. دختر ده برابر از قبل زیباتر شده بود و لباسی به رنگ زرد کمرنگ رنگ به تنش بود. آن جواهرات زیادی هم هم بود. دختر از شاهزاده تشکر کرد که اون را از اون تلس نجات داده و از شاهزاده خواست که با هم ازدواج کنند. وقتی اونا به کنار پل به دنبال اسب رفتن دیدن که اسب در اونجا نیست چون شاهزاده فکر میکرد که فقط یه ساعت خرچنگ بوده ولی بعدا فهمید که ده روزه که به شکل خرچنگ زیر آب بوده اونا داشتن فکر میکردن که چجوری به قصر پادشاه برن که دیدن یه کالسکه با ششتا اسب زیبا کنار روزخونه منتظر اونا هستن اونا با اون کالسکه به طرف قصر را افتادند. شاه و ملکه به خاطر دوری پسرشون گریه می‌کردن چون فکر می‌کردن که اون مرده. اونا از دیدن پسرشون و دختر زیبایی که همراش بود خیلی خوشحال شدن. خیلی زود مراسم عروسی به پا شد و همه درباریا به مدت 6 هفته به جشن و پایکوبی مشغول شدند. مدتی بعد یه روز که شاهزاده و عروسش تو باغ نشسته بودن کلاقی بهشون گفت ای عروس و داماد شما دخترایی رو که به شما کمک کردن تا از مشکل رها بشین فراموش کردین آیا اونها باید تا ابد بریسن؟ این سه خواهر در اصل سه تا شاهزاده بودن که توسط پیرزن دزدیده شده شوق از از اینکه اونها رو فراموش کرده بود، شرمنده شد و فوراً به طرف کلبر افتاد. زمانی به اونجا رسید که پیرزن تو خونه نبود. دخترها دیده بودند که اون میاد و آماده بودن تا با اون برن. اونها مقداری شیرینی دوست کرده بودند و در اون زهر ریخته بودند و روی میز گذاشته بودند تا وقتی پیرزن اومد از اون بخوره و بمیره. و همین طور هم شد پیرزن بریشت و از دیدن اون شیرنی های خوشمزه خیلی خوشحال شد و از اونها خورد و فوراً مرد. بعدها معلوم شد که پیرزن اتاق پر از علیاف داشته و اون اتاق به محض این که دیگران اون رو پیدا میکردند خود به خود میسوخت کلبه هم با خاک یکسان شد و شاهزاده و عروسش و دوتا خواهرش، سال‌های سال به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشین و تا داستان بعدی منتظرمون باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کوتوله ها